عزیزان به درس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. بررسی برسیامون به کتاب های انبیا و اشعیا و ارمیا رسیدیم. اگرچه ما نبوت رو مطالعه می کنیم که بیش از هزاران سال قدمت دارن، با این حال هنوز چیزهایی برای آموختن به ما دارن. دعای که این درس ها به شما کمک کنه تا وارد کلام خدا بشین ما کلام خدا در شما نفوذ کنه این شما و این معلم ما مرد دانا به حکمت خود افتخار نکند و شخص نیرومند به قوت خود نبالد و ثروتمند به ثروت خود فخر نکند بلکه هر که میخواهد افتخار کند به این افتخار کند که مرا میشناسد و میداند که خداوند هستم و رحمت و انصاف و ادالت را بر زمین به جا می آورند. چیزهایی که موجب خوشنودی و سرور من می باشد اشعیا و ارمیا دو وائذ بزرگ کتاب مقدس هستند وقتی که نبوت بزرگ اونها رو می باید یادمون باشه که 66 باب در کتاب اشعیا 52 باب در ارمیا و 48 باب در حزقیال وجود دارند که غالبا میتونیم خلاصه کوتاهی از اهم اون معیزه ها رو مطالعه کنیم الان خلاصه ای از یکی از بزرگترین موعظه های ارمیا رو براتون خوندم این پیغام در شرایط مصیبتبار بار قلبه بابلیا شده در زمانی که مردم در قول و زنجیر به بابل به اسیری می‌رفتند. اونهایی که از قتل عام اورشلیم جان سالم به در برده بودند، در ترس و وحشت و اندوه و سرگردانی بودند. رفتن به اسارت بابل خیلی بیشتر از چیزی بود که ارمیا در موعظه‌اش پیشگویی کرده بود. اگر اونها به تمام موعظه ارمیا گوش داده بودند، جنبه دیگری از موعظه او بود که به قوم خدا امید میداد. این یکی از موعظه‌هایی بود که وقتی قوم خدا در قول و زنجیر به بابل برده می‌شدند، به اونها امید میداد. حالا یک بار دیگه زمینه تاریخی که این پیغام در اون موعظه شده به خاطر بسپارید. مردم در قول و زنجیر هستند و چیزی نمونده که به بابل برده بشن. امید در پیغام ارمیا اینه که اونها هفتاد سال بعد باز خواهند گشت. اما در هفتاد سال چی بر سر اونها خواهد اومد؟ بسیاری از اونها باز خواهند گشت. در خلال تجربه مصیبت بار چی بر سر اونها خواهد اومد خب آماده باشید تا این موزه ارمیا رو بشنوید. چیزی که ارمیا به قوم یهودا میگه یک چنین چیزی هست. گوش کنید. اگر ثروتمند هستید به ثروت خود فخر نکنید. اگر قوی هستید به قوت خود فخر نکنید. اگر حکیم و یا تحصیل کرده اید به تحصیلات و حکمت خود فخر نکنید. وقتی که ارمیا کلمه فخر کردن رو به کار میبره، کلمه ای رو به کار میبره که اغلب در کتاب مقدس برای خدا به کار رفته. جلال خدا به ما گفته شده که خدا رو جلال بدیم و هر کاری رو برای جلال خدا انجام بدیم در زبان اصلی این کلمه کلمه جلال به این معنی هست که از پتانسیل هر وضعیت خاص برای نشان دادن ذات کامل خدا و اینکه او کی هست استفاده کنیم در واقع این معنی جلال دادن به خدا و یا اتخاذ وضعیتی هست که در اون خدا میتونه جلال پیدا کنه در دعای شاگردان وقتی دعا میکنیم نام تو مقدس باد چیزی تقریبا شبیه معنی کلمه جلال رو دعا میکنیم نام خدا چی هست؟ نام خدا سعی کردن برای نشان دادن ذات خدا هست وقتی شما میگید نام تو مقدس باد چیزی که در واقع دعا میکنید اینه که توسط زندگی شما نام خدا شناخته بشه یا یعنی اینکه مردم توسط شما و روش زندگی شما ذات و ماهیت واقعی خدا رو بشناسند. حالا با این دیدگاه ارمیا با کلامش میگه که اونها زیاد به دنبال خدا نیستن. بلکه این اُسراهایی که در حال رفتن به اسارت هستند مثلا ارمیا میگه ای کسانی که ثروتمندید این چیزیه که شما در موقع رفتن به اسارت بر اون تمرکز میکنید. بر ثروتتون تکیه نکنید که ماهیت شما رو نشون بده به عبارت دیگه شما نباید به ثروتتون فخر کنید چون با ثروتتون به کمال نخواهید رسید اشخاص ثروتمند که در بین اسرا بودند باید موعظه ارمیا رو قبل از اینکه در قول و زنجیر گذاشته بشن شنیده باشن چون تمامی ثروت اونها مصادره میشد اونها شاید قبل از سقوط اورشلیم به ثروت خودشون فخر میکردند من فکر میکنم چیزی که ارمیا به ثروتمندان میگفت چون این چیزی بود ای ثروتمندان ثروت ماهیت وجود شما رو نشان نخواهد داد چون که تمامی ثروتتون رو از دست خواهید داد و با همون برداشت ارمیا میگه مرد حکیم مرد باهوش فکر نکن که خیلی باهوش هستی آیا الان به زنجیر کشیده نخواهی شد و به مردان قوی میگه به قوت خودتون فخر نکنید بعضی ها به قوت جسمانیشون فخر میکنن اما او با گرسنگی و جیره بندی ضعف جسمانی رو تجربه خواهند کرد پیغام ارمیا به انسان قوی این بود که شما ماهیت خودتون رو در قوت جسمانی نخواهید یافت چون که ضعیف خواهید شد شاید به لهاظ جسمانی تبدیل به اسکلت‌هایی بشید چیزی که ارمیا داشت به اون اوسرامی گفت این بود که کمال شما و اساس وجود و قدرت شما ثروت شما، تحصیلات شما، حکمت شما و قوت شما نیست اگر ثروتمندید، اگر قوی هستید، اگر تحصیل کرده و حکیم هستید این چیزها الان شما رو کامیاب نخواهد کرد ارمیا چیزی بیش از یک پیغام منفی به اونها میده ارمیا پیغام مثبتی هم به اونها میده خدا به او سرا توسط ارمیا میگه هر که میخواد افتخار کنه به این افتخار کنه که منو میشناسه و میدونه که خداوند هستم ارمیا در این پیغام میگه به این ترتیب شما میتونید پی به ماهیت من در زمین و آسمان ببرید اگر درک کنید که من خودم رو توسط نشانه هایی در زمین آشکار میکنم میتونید به ماهیت من پی ببرید و میتونید به ماهیت خودتون پی ببرید نشانه های خدا چیزهایی هستند که شخصیت خدا رو نشون میدن که او چه شکلی هست چطور امکان داره که خدا رو شناخت بر اساس عهد جدید اگر نشانه های خدا رو ملاحظه کنید میتونید راهتون رو به طرف خدا پیدا کنید مثلا در اول یوحنا باب چهار یوحنا رسول میگه خدا محبت هست و کسی که در محبت ساکن هست در خدا ساکنه و خدا در او اگر خدا محبته و اگر نوع خاصی از محبت هست که خدا هست پس با اون محبت ارتباط برقرار کنید یا خدا رو از بیان محبت خودش بشناسید. اون موقع خدا رو در روی زمین پیدا خواهید کرد. چون محبت یکی از راه های رسیدن به خدا در زمین هست و نشون میده خدا در آسمان کیه و چگونه هست. در اون موعظه باشکو هرمیا میگه خدا میتونه به اون وسیله شناخته بشه. به وسیله محبت پایدارش، به وسیله ادالتش و به وسیله نیکوکاری خودش. حالا آیا این موعظه افرادی را که در حال رفتن به اصارت بودند به فکر وا نمی داشت؟ اونا می‌دونستان یقیناً با ثروت، حکمت و قوت جسمانیشون به موفقیت دست نخواهند یافت. اونا میدونستند که ماهیت و کمال خودشون رو در جای دیگری خواهند یافت. ارمیا می گفت این بهترین زمانه که ماهیت و کمال خودتون رو در خدا پیدا کنید. چون اگر خدا را به عنوان محبت بشناسید چون اگر خدا رو به عنوان پارسایی مطلق بشناسید، اگر خدا رو به عنوان عادل بشناسید، اگر این نشانه ها رو بدونید که تجلی خدا در روی زمینه، خواهید فهمید که خدا در آسمان چی هست. اون وقت چیزی خواهید داشت که کسی هرگز نخواهد تونست از شما بگیره. هیچ کس نمیتونه خدا رو از شما بگیره. اونا میتونن قوت شما رو بگیرن، میتونن ثروت شما رو بگیرن، اما نمیتونن اگر واقعا و حقیقتا خدا را بشناسید خدا را از شما بگیرند ما در دوره خودمون کسانی رو داریم که در اسارت بودن مثل دریا سالار هرمیادنتون که طی جنگ ویتنام در زندانی به نام هانوی هیلتون نگهداری میشد مردانی مثل او در سلول انفرادی بودند بعضی از اونها چهار سال بعضی ها و شش و بعضی ها حتی بیشتر از هفت سال در سلولهای انفرادی هیچ کس جز خدا نبود که به او مراجعه کنند بعضی از اون مردان وقتی خدا رو پیدا کردند احساس کامیابی میکردند. اونا ماهیت وجود خدا رو کشف کرده بودن. با پی بردن به ماهیت وجود خدا، اونها پی به این بردن که ماهیت خودشون باید چگونه باشه. وقتی اونا در سلول انفرادی بودن، اونا به ثروت خودشون فرق نمی اونها اونا کمال رو در قوت جسمانیشون نمی اونها اونا کمال رو در خداوند یافته بودند. این پیغامی بود که ارمیا در طی به اصارت رفتن قوم یهودا برای اونها معزه می کرد. همونطور که گفتم ارمیا یک واعز نمادین عملی بود. یکی از عملی ترین مععزه های نمادین او مععزهی هست به نام کمربند پوسیده. در فرهنگ ارمیا، اونها بر فروتنی ارمیا بیشتر به این دلیل تأکید میکردند کردند که او لونگ به کمر میبست که عملا به معنی لباسش بود و ماها اون را عوض نمیکرد بعد اون را در حفره ای ماها دفت می کرد و بعد از ماها دوباره اون را بیرون نیاورد و اون پر از حشرات بود بود. و پوسیده بود. میتونید تصورش رو بکنید که چه شکلی بود؟ من مطمئنم وقتی او به این طرف و اون طرف میرفت و یک تکه لباس زیر رو با خودش حمل میکرد، توجه اونها را به خودش جرد میکرد. او به اونها میگفت، این رو میبینید، این پوسیده، بوی تعفن گرفته، به هیچ دردی نمیخوره. شما در نظر خداوند یک چنین چیزی هستید. شما بدپرست هستید، گناهکارید، به خاطر زندگیی که در پیش گرفتید، به هیچ دردی نمیخورید. خدا غرور شما رو بر خواهد داشت و اون رو تبدیل به چیزی مثل این پارچه پوسیده خواهد کرد. من مطمئنم او به این وسیله با اونها صحبت می کرد و اونها پیغام او رو می‌گرفتند. اگرچه برای اونها تنفرآور بود. من هرگز نشنیدم که در جماعت امروزی ما واعظی چنین موعظه‌ای بکنه. احتمالا اگر چنین چیزی پیش بیاد مردم دم مال کلیسای خواهند گشت. ارمیا های عملی خودش تا آخر اسارت ادامه داد. در باب 32 و, و, و, و سی ارمیا ما درباره یکی از عالی ترین کارهایی که ارمیا انجام داده می خونیم. این در اوج محاصره در حدود اواخر حکومت صدقیا بود شهر اورشلیم در حال سقوط بود در حالی که ارمیا به خاطر موعظه در زندان بود مکاشفه ای از خدا دریافت کرد مکاشفه خدا این بود در چنین شرایطی بود که این پیغام از طرف خداوند به من رسید پسر امویت هننئیل، پسر شلوم به زودی نزد تو خواهد آمد و از تو خواهد خواست تا مزرعش را در انا تو او بخرید. چون طبق شریعت پیش از اینکه که آن را به دیگری بفروشد، حق توست که بخری زندان جای مناسبی برای خریدن ملک نبود و این زمان هم زمان مناسبی برای خریدن ملکی آن هم دور از اورشلیم نبود. فقط یک شخص احمق میتونست یک چنین ملکی بخره اما خدا در مکاشفهش گفت این خیشاوند تو پیشنهاد خرید به تو خواهد داد و من میخوام که مزرعه او رو بخری. حنا نیل میاد و میخواد او رو در سیاه چال ببینه. مطمئنم او میگه من ای در آناتول دارم فقط چند کیلومتری از اورشلیم و شهر زادگاه ارمیاد دوره و طبق قانون حق انفکاک اون مال تو هست. خدا در قلب من گذاشته که پیشنهاد خریدش رو به تو بده. خب ارمیا از خرید خودش محصول زیادی به دست آورد. او شاهدانی می گرفت کاتبان و علما رو صدا کرد و قراردادی نوشت قباله خرید رو که مهر شده و مقتوم بود در کوزه سفالین قرار داد اون رو مهر کرد که بتونه تا سالها اونجا بمونه بعد او موعظه عملی بزرگ دیگری کرد او موعظه کرد و گفت گوش کنید من به شما گفتم که از اسارت بابل باز خواهید گشت خب بذارید بهتون بگم واقعا به این ایمان دارم من همین الان املاکی برای خودم خریدم که حدود 5 کیلومتر از اورشلیم دورتر هست. فکر میکنید اگر من ایمان نداشتم که شما باز خواهید گشت این کار رو میکردم؟ در باب و دو این معزه زیبا رو به شما میده معزه امیدی که منتهی میشه به متن زیبایی در ارمیا سی و سه. ارمیا اینطور معزه میکنه زیرا یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید. این اسناد در آینده ارزش خواهند داشت. زیرا روزی خواهد رسید که هر کس بار دیگر صاحب املاک خود خواهد گردید و خانه ها و تاکستان ها و ها خرید و فروش خواهند شد چیزی که او سعی داشت بگه این بود که خداوند بخت اسرائیل رو دوباره بلند خواهد کرد و من میخواهم شما بدونید که من ایمان دارم خدا این کار را خواهد کرد در چنین ای بود که ارمیا در باب سیاست این متن عظیم نبوتی رو به ما میده مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت. آیا تا حالا با اون آیه برخورد کرده اید؟ این آیه معروفی از کتاب ارمیا هست. بسیاری از مردم اون آیه رو می‌دونن. یک بار در زندگی شخصی خودم اون رو تجربه کردم. پایان سال بود و من سال بسیار بسیار بدی داشتم. شنیدم که در آخرین روز اون سال یک مفسر خبری می میگفت به نظر میرسه که امسال هم در سرتاسر دنیا مانند سال گذشته خواهد بود. در خاورمیانه و هند و چین و در همه جا یکسان خواهد بود. یادمه که داشتم به خدا میگفتم من نمیتونم این رو تحمل کنم. یک سال دیگه مثل سال گذشته یادمه که خیلی بیپرده و صادقانه با او حرف می زدم. به او می گفتفتم میخواهی یک سال دیگه مثل سال گذشته به من بدی اگه اینجوری باشه استفاده از من رو بیخیال شو من اصلا نمیتونم یک سال دیگه مثل سال گذشته رو تحمل کنم. در این صورت حتما دست از کار خواهم کشید. داشتم با خدا صحبت می کردم. در وقت دعایی، در وقت خلوت با خدا کتاب و مقدس رو باز کردم و خدا این آیه زیبا رو به من داد. مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها رو ندانستهی مخبر خواهم ساخت. با این آیه بود که توانستم وارد سال جدید بشم و تا حد زیادی منو آروم کرد. خدا داشت به من می گفت که اگه بیشتر از این مثل سال گذشته نمیخوای اگه به حد کافی تجربه کردی، اگه نمیتونی سالی مثل سال گذشته رو تحمل کنی، منو رو بخون. عملی این آیه در زندگی های ما اینه. خدا میخواد که ما او رو بخونیم. آیا تا حالا خدا رو صدا کردید؟ او میگه من رو بخانید. من دوست دارم که شما را از چیزهای عظیم باخبر خبر کنم که تا حالا از اونها خبر نداشتید. چیزهایی که هیچ اطلاعی از اونها ندارید. آیا میتونید فضای این آیه زیبا رو تصور کنید این بخشی از موعظه‌ای بود که ارمیا با خریدن اون مزرعه کرد اون هم زمانی که اورشلیم داشت میرفت تحت هجوم ها نابود بشه نکته اصلی موعظه اینه زمانی خواهد رسید که خرابی‌های اورشلیم را ترمیم خواهم کرد به اهالی آن سعادت و آسایش خواهم بخشید در همین مکان بار دیگر آواز سرور و شادمانی و صدای شاد عروس و داماد شنیده خواهد شد مردم به خانه‌های من قربانی‌های گذاری آورده خواهند گفت بیایید خداوند قادر متعال را تمجید نماییم زیرا او نیکو و مهربان است و رحمت او همیشه پابرجاست من این سرزمین را بیش از دوران گذشته سعادتمند و کامیاب خواهم ساخت در این سرزمین که همه شهرهایش ویران شده و انسان و حیوانی در آن به چشم نمی‌خورد بار دیگر چوپانان های خود را خواهند چرانی و شمار گوسفندانشان در همه جا فزونی خواهد یافت در آبادیهای کوهستانی در شهرهای واقع در دشت در تمام دشتها در خاک بنیامین اطراف اورشلیم و در تمام شهرهای یهودا ولی روزی میآید که به تمام وعدههای خوبی که به اهالی اسرائیل و یهودا داده ام وفا خواهم نمود میبینید موعظه ارمیا همش مجازات و دلتنگی نیست امید زیادی در موعظه او هست وقتی اورشلیم سقوط کرد و مردم به بابل به اسیری رفتن، این تنها امید اونها بود این خیلی مشكله که کتاب ارمیا رو خلاصه کنیم چون که اون از یک سری گریه ها تشکیل شده و در فرم خلاصه ارمیا گریه نمی کنه بهترین راه برای مطالعه کتاب ارمیا اینه که به موعظه عظیم او نگاه کنیم درست مثل کتاب اشعیا شما اینجا هم یک مشکل ترتیب وقوع زمانی دارید این معزه ها در کتاب ارمیا به ترتیب تاریخ وقوع قرار نگرفتند در باب 36 از کتاب ارمیا داستان باشکوهی از این نبی رو میبینید که در سیاه چال هست به او اجازه داده شده که یک منشی داشته باشه کسی مثل کاتب اسمش باروک بوده ارمیا فکر میکرده که شاید در سیاه چال بمیره شاید در موقع سقوط اورشلیم بمیره او نمیدونست که آینده برای او چی رقم زده پس او با روح خدا هدایت میشه که موعظه‌های خودش رو که خدا در طی یک سال خدمتش به او داده مکتوب کنه. ارمیا شروع میکنه به یادآوری تمامی موعظه‌هاش، شروع میکنه به فکر کردن به های بزرگی که خدا به او در زمینه ها و موقعیت‌های تاریخی خاصی داده. او میدونه که اونها میتونن بر قومها اثر بذارن، پس میخواد که اونها رو مکتوب کنه. او ها رو به باروک دیکته میکنه. پادشاه وقت که یهویاقیم هست، از تومار ارمیا خبردار میشه. او میخواد که تومار در حضور او خوانده بشه. زمستان بود و آتشی در بخاری دیواری روشن بود وقتی که تمامی قسمت‌های تومار خونده میشه پادشاه چاقویی گرفت تومار رو پاره کرد و اون رو در آتش انداخت تا اینکه تمامی اون سوخت وقتی باروک به ارمیام میگه که پادشاه تمامی تومار رو سوزونده ارمیام میگه تومار دیگه ای بردار و قلم و مرکب خودت رو بیار دوباره خواهیم نوشت من هایی به یاد آوردم که در تومار اول نبود در تومار دوم اونها رو هم اضافه خواهیم کرد ارمیا همینطور که ها به یادش میومد اونها رو برای باروک دیکته میکرد به این دلیلی که شما در کتاب ارمیا هم ها را بر اساس تاریخ وقوع اونها ندارید یکی از های بزرگ او در اوایل کتاب هست و خلاصهاش اینه که خداوند میگه پدران شما در من چه بیانصافی یافتند که از من دوری ورزیدند و اباطیل را پیروی کرده باطل شدن قوم من جلالشان رو با چیزهای بیهوده عوض کردند. چونکه که مرتکب دو شرارت شدند، اولا منو فراموش کردن چشمه های آب حیات رو رها کردند، و برای خود آبنبارها ساختند. آبنبارهایی که رخنه داره و نمیتونه آب رو نگه داره این معزه بسیار زیبایی هست ارمیا میگه که مردم مرتکب دو گناه شدند. اونها از خدا برگشتند و از حکمتی که منبعش کلام خداست رو برگردوندن بعد او سؤالی میپرسه شما به سوی چی برمیگردید و جواب رو به زیبایی توضیح میده وقتی که در مععزش میگه مرا که چشمه آب حیاتم ترک نمودید و به سمت حوزهای شکسته که نمیتونند آب رو در خود نگه دارن برگشتید. او باز هم به اون روش میگه چطور میتونید بگید ما عاقل هستیم و شریعت خدا با ماست. اینک قلم دروغین کاتبان قانون خداوند رو به دروغ تبدیل کردند مردان حکیم خجل خواهند شد، مرعوب شده به اسیری خواهند رفت اینکه اونها کلام خدا رو رد کردند و اونها چه حکمی دارند چیزی که اون میگه اینه که قلم کاتبان دروغین گفتهاند که کلام خدا حقیقت نداره حالا وقتی قلم‌های کاذب بتونند شما رو متقاعد کنند که کلام خدا قابل اعتماد نیست اون وقت شما افکار و حکمت انسانی رو به کلام خدا ترجیح میدید و ارمیا مردم رو به چالش میکشه اونها چه حکمی دارند که اون رو به حکمت کلام خدا ترجیح میدید این موعظه برای امروز ما هم مورد استفاده است. سوال مورد علاقه من امروز همون سوالی هست که ارمیا در دوره خودش کرد. اگر شما به این نتیجه رسیدید که کلام خدا کلام خدا نیست، چی رو موعظه خواهید کرد؟ اگر شما واعظ هستید، آیا اشعار رو موعظه خواهید کرد؟ چه چیزی رو موعظه خواهید کرد؟ اگر کلام خدا رو موعظه نکنید، آیا اومانیزم رو موعظه خواهید کرد؟ آیا اگر واقعا دلسوز باشید روانشناسی رو معایزه خواهید کرد و سعی خواهید کرد به مردم در حل مشکلاتشون کمک کنید؟ آیا به مردم مشورت خواهید داد و تا حدودی درمان خواهید کرد؟ اگر باور نکنید که کلام خدا واقعا کلام خداست، چه چیزی رو معایزه خواهید کرد؟ ارمیا میپرسه در مقایسه با حکمت کلام خدا اونها چه حکمتی دارن؟ این چیزی بود که ارمیا ها کرد. این فقط خلاصه ای از اون موعظه بزرگ بود. اینجا یک موعظه خلاصه شده دیگه از موعظه های ارمیا هست. آیا هبشی پوست خود را تبدیل توانت نمود؟ یا پلنگ پیسه های خیش را؟ آنگاه شما نیز که به بدی کردن معتاد شده اید، نیکویی توانید کرد؟ کتاب ارمیا خیلی با بقیه کتاب مقدس به هم مربوط هستند. آیا میدونید که کتاب مقدس هرگز به شما نمیگه که عوض بشید و یا برای بهتر شدن خیلی تلاش کنید؟ من از خیلی مردم حیرت میکنم که فکر میکنند مفهوم مسیحیت اینه که بهترین ها رو انجام بده و تمام سعیت رو بکن که بهتر بشی. از نو شروع کن و بهتر انجام بده. کتاب مقدس اینو نمیگه. در واقع ارمیا این رو با حالت تنزی در باب دو آیه 66 به ما میگه. چرا اینقدر میشه تابی تا راه خود را تبدیل نمایید؟ در این قسمت کوچک ما الان خوندیم و میگه اگر پلنگ بتونه پیشه ها رو تبدیل کنه. اگه هبشی بتونه رنگ پوستش رو عوض کنه اون وقت شما هم که به کارهای شریدان عادت کردید میتونید کارهای خوب انجام بدید چیزی که او در واقع میگه یک چنین چیزیه مردم نمیتونن تغییر کنن و شما هم نمیتونید یک ضرب المثل یونانی هست که میگه الان هر جوری هستی موقع مرگ هم همونطور خواهی بود معنیش اینه که حالا هر طور هستی بعداً هم طور خواهی بود بسیاری از جوونا به خودشون میگن من یه روزی بهتر خواهم شد. وقتی که دبیرستان رو تموم کنم، دانشجوی خوبی در کالج خواهم بود. وقتی کالج رو تموم کنم، کارای خوبی انجام خواهم داد. اما من میدونم الان هر طوری که هستم، همون طور هم خواهم بود. اما اینجا ایده ای هست که کتاب مقدس هم با اون موافقه و اون چیزیه که روانپزشکان هم با اون موافقند که از گذشته شما میشه زمان حال رو درک کرد و آینده شما را پیشگویی کرد. به هر حال میتونه استثناء بزرگی هم در این مورد باشه کتاب مقدس میگه اگر شما با شرایط خدایکی بشید میتونید تغییر کنید کتاب مقدس میگه شما نمیتونید تغییر کنید اما میتونید تبدیل بشید اما میتونید با نوع شدن تبدیل بشید به عبارت دیگه شما میتونید تجربه ای داشته باشید که در اون تجربه شما منفعل هستید و خدا فعاله کتاب مقدس این تجربه را تولد تازه میگه و تولد تازه چیزیه که میتونه برای شما اتفاق بیفته کتاب مقدس این امید رو به شما میده. شما نمیتونید عوض بشید، اما تأکید میکنه که خدا میتونه شما رو تغییر بده. این یکی از معایزه های بزرگ ارمیا هست. ارمیا همینطور این رو در مورد قلب انسان گفته. قلب انسان بسیار فریب کاره. کی میتونه اون رو بدونه؟ بعد او جواب میده فقط خدا. فقط خدا فریب کاری قلب انسان رو میدونه. طبیعت انسان به هر حال چیه؟ بنابرای گفته ارمیا و تمامی کتاب مقدس، طبیعت انسان اساسی ترین مشکلیه که خدا به اون اشاره کرده. قلب انسان چیه؟ حالا این خیلی جالبه. شاید اون شعر کوتاه در مورد میمون رو شنیدید که اینطور خاتمه پیدا میکنه. میمون میگه انسان رو میمون خطاب نکنید. هیچ میمونی تا حالا زنش رو کتک نزده و بچه های کوچکش رو بدون غذا ترک نکرده. هیچ میمونی 6 میلیون میمون رو نسوزونده فقط به خاطر اینکه ظاهر اونا رو دوست نداشته اما انسان این کارهای وحشتناک رو انجام داده نکته این شعر کوتاه اینه انسان این ظرفیت رو داره که مانند خدا بشه و همینطور این توانایی رو داره که مثل آدولف هیتلر بشه انسان میتونه کارهایی انجام بده که حیوانات حتی فکرش را هم نمیکنن. این چیزی که ارمیا ازش صحبت میکنه وقتی میپرسه استعداد قلب انسان چیه و جوابش اینه که بدبختانه اون شریره کی میتونه عمق شرارت قلب انسان رو بدونه فقط خدا به گفته خدا فقط خدا میتونه بدونه که قلب انسان چقدر میتونه شریر باشه بعد او اضافه میکنه از همه اینها مهمتر اینه که قلب انسان فریبکاره قلب ما فریبنده است ما به خودمون در مورد خودمون انواع چیزهایی رو میگیم که واقعیت نداره من شبانی رو میشناسم که روانشناسی خونده وقتی او کالج رو تموم کرد فکر می کرد که هیچ چیزی نیست که در مورد رفتار انسان ندونه. او بری نقیده بود که اگر کسی مشکلی داشت و یا فکر می کرد شخص عقده‌ای هست اگه مدتی با او بشینه و با او وقت بذاره، میتونه کمکش کنه تا خودش رو تماماً بشناسه. به هر حال او هر روز با یک استثنا روبرو شد. استثنایی متفاوت از چیزی که در طول دوره خوانده بود، تا اینکه بالاخره به این نتیجه رسید: خدایا، من نمی‌تونم انسان ها رو درک کنم. به نظر میرسه، هر کسی رو که ملاقات می کنم از قوانین مستثنا هست. من باید این کتاب ها رو دور بندازم چون مردم توی این غالب ها نمی گنجن. اونا در اون الگوها نمی گنجن. وقتی اون شبان به این آیه از ارمی رسید که قلب انسان بیش از هر چیزی فریبنده است و متاسفانه شریده و کی می تونه این رو بدونه تنها جواب اون سؤال اینه که فقط خدا، فقط خدا قلب انسان رو می دونه. به این دلیل که داوود بسیار حکیم بود، بسیار حکمت روحانی داشت. داوود به حضور خدا به عنوان روانکا و اعظم اومد و دعا کرد، دعایی که در آخر مزمور 139 هست. ای خدا، مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد هست؟ و مرا به طریق جاودانی هدایت فرمو، بلاخره تنها کسی که شما میتونید این رو بهش بگید خداست. چون که فقط خدا قلب شما رو میدونه از اون جایی که قلب شما فریبنده است باید به حضور خدا بیایید و بگید خدایا حتی خودم قلبم رو نمیشناسم نمیتونم قلب خودم رو بشناسم سرپوش قلب من منو بردار و افکاری رو که نباید اونجا باشه به من نشون بده چون من میخوام در راههای جاودانی تو قدم بردارم وقتی کتاب ارمیا رو مرور میکنید موعظه های کوچک دیگری رو به طور خلاصه در کتاب خواهید یافت که من فرصت بررسیش رو نداشتم. به اون های ارمیا نگاه کنید و بر اونها تعمل کنید. وقتی این کار رو بکنید، یکی از بزرگترین واعظین رو خواهید شناخت. این نبی رو دوست خواهید داشت که در زمان سقوط اورشلیم که مردم فاجعه اسارت رو تجربه میکردند موعظه می کرد خواهید فهمید که های ارمیا همون اندازه که برای مردم اورشلیم در روز موعظه مفید بوده، برای امروز من و شما هم کاربرد داره. خدا قلب شما رو میدونه شما خانواده، دوستان و حتی خودتون رو فریب میدید اما نمیتونید خدا رو فریب بدید او قلب شما رو میدونه و میخواد که شما رو مانند زرف زیبای تازه‌ای بسازه اما باید به خدا اجازه بدید که شما رو تغییر بده و زندگیتون رو شکل بده مثل داوود پادشاه بگید خدایا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد هست و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. اگه وقت بذارید و نبوتهای ارمیا را همراه با دعا بخونید، برای شما برکتی به همراه خواهد داشت. خدا شما را برکت بده. دوستای خوبم به پایان جلسه دیگری از مطالعه کتاب مقدس رسیدیم و امیدواریم که این پیام شما را تشویق کرده باشه که بیش از پیش تماماً به خداوندمون اعتماد کنید و در حالی که در ایمانتون رشد ر بخواید که بشارت انجیل رو با دیگران نیز درمیون بذارید. اونچرا که این هفته آموختین با دیگران نیز درمیون بذارین و از اونها دعوت کنید که در جلسه بعدی با ما همراه باشن. دایما اینه که شما در معرفت و شناخت ایمان رشد کنید و ایسا و قدرتش وعدهاش و امیدی که ما به خاطر قیامش داریم رو بهتر بشناسیم. تا روز محبت، آرامش و فیض خداوندمون به شما جسارت بده که هر روز وفادارانه اون رو پیروی کنید.